فصل ده دهم بعد از این عیسی خداوند هفتاد نفر دیگر را تعیین فرمود. بانان را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آنها دیدن نمایت فرستاد. با آنان فرمود محصول فراوان است اما کارگر کم. پس باید از صاحب محصول تقاضا کنیم. که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد بروید و بدانید که من شما را مثل بره در میان گرگ ها میفرستم هیچ کیسه یا کوله‌بار یا کفش با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید و هر خانه که وارد می‌شوید، اولین کلام شما این باشد سلام بر این خانه باد اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت در همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما میگذارند بخورید و بنوشید زیرا کارگر مستحق مزد خود است خانه به خانه نگردید وقتی به شهری وارد می‌شوید و از شما استقبال می کنند غذایی را که برای شما تهیه می کنند بخورید. بیماران آنجا را شفا دهید و بگویید پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. وقتی به شهری وارد میشوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید. خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما پاک میکنیم. ولی این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شده است. بدانید که روز آخر برای صد بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر. وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر موجزاتی که در شما انجام شد در سور سیدون میشد، مدت مدتها پیش از این پلاس پوش و خاک سرنشین توبه میکردند. ولی روز داوری برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناهم میخواستی سر به آسمان بکشی به دوزخ سرنگون خواهی شد. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است. هر که شما را رد کند مرا رد کرده است. و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد کرده است. آن هفتاد شاگرد خوش و خورم بازگشتن، و عرض کردن خداوندا با ذکر نام تو حتی دیوها تسلیم ما می شوند. پاسخ داد، من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. من به شما قدرت دادم که مارها و اقربها و تمامی قوای دشمن را زیر پا لید مال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید. ولی از اینکه ارواح تسلیم شما میشوند شادی نکنید بلکه شاد باشید که اسامی شما در عالم بالا ثبت شده است در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت ای پدر ای خداوند آسمان و زمین تو را سپاس میگویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی. آریه پدر، اراده تو چنین بود؟ پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است فقط پدر می داند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان مکشوف سازد می دانند پدر کیست. عیسی رو به شاگردان خود کرد و به طور خصوصی گفت خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما میبینید میبینند، بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزون میکردند که آنچه را که شما میبینید ببینند اما ندیدند و آنچه را شما میشنوید بشنوند اما نشنیدند. روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید ای استاد. چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان بشوم؟ عیسی به او فرمود، در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر میکنی؟ او جواب داد، با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود، خداون خدای خود را دوست بدار و همسایت را مانند خودت محبت نما. ایسا فرمود، درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بیخرزی است، به ایسا گفت، همسایه من کیست؟ ایسا چنین پاسخ داد. مردی که از اورشلیم به اریها می رفت، به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیممرده انداختند و رفتن. اتفاقاً کاهنی از همان راه می گذشت. اما وقتی او را دید، از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد، پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت، نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست، بعد او را برداشته سوار چارپای خود کرد و به کاروان برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرش کردی وقتی برگردم به تو میدهم. به عدیده تو کدام یکی از این سنفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب میآید. جواب داد: آن کسی که به او ترحم کرد حیسا فرمود برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده یامد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش میداد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود پس پیش عیسی آمد و عرض کرد خداوند دا. هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم، آخر به او بفرمام بیاید به من کمک کنن. اما عیسی خداوند جواب داد ای مردها ای مردها تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است، آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.